برسه جنگاور اونیه ششمین سفر 643 سرها پا شده اند و پاها سر امویم شیخ یاسین میگوید هر روز که میگذرد دنیا بیشتر در فساد فرو میرود از وقتی عصر سعادت به پایان رسیده تاریخ تمدن چیزی نبوده جز قلتیدن در سراشیبی به عمویم احترام میگذارم و به حرفش گوش میکنم. اما فکر میکنم در این مورد اشتباه می کند. چون اگر از من بپرسید میگویم هر جا که آدمیزاد بوده جنگ و خشونت بوده و از این به بعد هم خواهد بود مگر در زمان حضرت پیغمبر اینطور نبود مگر در آن دوره خصومت و دشمنی از بین رفته بود مجادله و جنگ در ذات زندگی هست طبیعت را ببین شیر آهو را میخورد اش را هم کرکسها تکه پاره می کنند. چیزی که باقی میماند استخوانهای سفید است طبیعت ظالم است. به اشک چشم اهمیت نمیدهد. در آسمان، در دریا و زمین، هر لحظه و همه جا، بزرگ، کوچک را، ظالم، مظلوم را می‌بلد. برای همین است که برای زنده ماندن فقط یک قاعده هست. باید از دشمنت حیلهگرتر و قویتر باشید. اگر میخواهی سرت بر بدنت بماند و قلبت در سینه بتپد باید بجنگی به, به همین سادگی و ما هم میجنگیم امروز در این دوران حتی صاف و سادهترین آدمها هم میدانند چاره دیگری وجود ندارد پنج سال پیش وقتی صد ایلچی چنگیز خان را که برای بستن معاهده صلح فرستاده بود یک یکجا به قتل رساندند اوزا به هم ریخت چنگیز خان از خشم خونش به جوش آمد و علیه اسلام اعلان جنگ کرد هنوز هم معلوم نشده چرا ایلچیها را كشتند کسی نمیداند بعضیها میگویند چنگیز خان خودش ایلچیها را کشت تا ای برای حمله داشته باشد اینها را من نمیدانم تنها چیزی که میدانم این است که در عرض پنج سالی که مغلها خاک خراسان را به توبر میکشیدند سنگ روی سنگ سر روی گردن نماند تازه انگار همین بس نبوده در کوسداق بر قشون سلجوقی قلبه کردند و قوجا سلطان را مجبور کردند خراج بپردازد و با آنها بیعت کند اینکه که مقلها نسلمان را از روی زمین برنداشتند به این دلیل نبوده که دوستمان داشتند بلکه ترجیح دادند زیر یوق آنها باشیم. از روز ازل از وقتی قابیل حابیل را کشت جنگ بوده اما مثل قشون تشنه به خون مقل را نه کسی دیده نه کسی شنیده بود در هنر جنگ سرآمد دیگرانند از انواع سلاح استفاده میکنند که هر یک برای هدفی متفاوت است همگی جوشن پوشند و مجهز به ششپر و تبر و شمشیر و خنجر و تیر و کمان تیرهایشان از زره میگذرد و سختترین استخانهای بدن را هم میشکند حتی تیرهایی ساختهاند که سفیرکشان از فوجی به فوج دیگر خبر میبرد در جنگ چنان مهارتی یافتهاند که کسی را توان مقابله با آنها نیست شهرهای قدیمی مثل بخارا به ویرانه بدل شدهاند. تازه مشکلمان فقط مقلها نیست صلیبیها از یک طرف بیزانس هم از طرف دیگر خود حکومت‌های مسلمان هم با یکدیگر رقابت می‌کنند در وضعیتی که دشمنان از هر طرف ما کردهاند محاصره همان کرده اند، دم زدن از صلح و آرامش به چه کارمان میآید. برای همین است که هایی مثل مولانا اعصابم را به هم میریزند. برایم مهم نیست که همه دوستش دارند و احترامش را نگه میدارند. به نظر من که آدم ترسویی است قبلا ممکن بود عالم خوبی باشد اما این روزها دنبال رو شمس کافر شده حالا که دشمنان اسلام بیخ گلوی مان را گرفتهاند مولوی به جوانها چه نصیحتی میکند انفعال حراس هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا فقری نوا آنجا رود هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا کشتی است آب آنجا رود اگر این طور باشد پس چطور می توانیم مقاومت کنیم؟ چطور می توانیم سرپا بمانیم؟ جواب مولانا آماده است با سبر پس گردنمان بزنند و نانمان را از دستمان بگیرند. همین را میخواهی؟ مولانا رسما توصیه به تسلیم می کند. میخواهد مسلمان را به گله گوسفندان آجز و متی تبدیل کند. میگوید هر تایفه قسمتی و موسمی دارد. یعنی چه؟ یعنی باید منتظر بنشینی تا عجلمان سر برسد بجز عشق کلمه‌های دیگری هم دوست دارد صبر سازش آرامش مدارا توکل همه اش حرف مفت است اگر دست او باشد همه باید در خانه های من بنشینی و منتظر بمانیم دشمن از راه برسد و سرمان را ببرد مطمئنم که آن موقع از سوراخش بیرون میآید و به ویرانه ها نگاه میکند و میگوید چه کاری از دستمان برمیآید؟ قسمت این بوده برای این هم باید شکر کرد شایهی به گوشم خورده می چند روز پیش حرفهای عجیب و غریبی زده. گفته مسجدها و مدرسه ها باید خراب شوند. این هم شد حرف مولوی هنوز کودک بوده که همراه خانوادش از بلغ فرار کردهاند و به آناتولی پناه آوردند. سلطان سلجوقی ثروتمندان قدرتمند آن دوره را آشکارا دعوت کرده بوده پدر مولوی هم یکی از آنها بوده با شکم سیر و جیب پر از خارزار بلخ بیرون آمدهاند و به باقهای لطیف قونیه وارد شدن مردی با چنین پیشینه ای خیلی راحت می تواند بگوید همه چیز را به فال نیک بگیر. همین دیروز بود که شنیدم شمس تبریزی در بازار برای جماعت حکایتی تعریف می کرده. گفته که حضرت علی داماد و خلف پیغمبر روزی در میدان جنگ با کافری می جنگیده. حضرت علی آن مرد کافر را بر زمین می زند، بر سینهش می نشیند و درست همان لحظه که می‌خواسته زلفقار را در قلبش فرو کند مرد کافر سرش را بلند می‌کند و با نفرت به صورتش آب دهان می‌اندازد حضرت علی فورا شمشیر را رها می‌کند نفسی عمیق می‌کشد و بلند می‌شود و میرود. مرد کافر حیرت می‌کند از پی علی میدود و میپرسد ای بیست چرا رهایم کردی و نکشتی حضرت علی میگوید چون بر تو خشم آوردم مرد کافر حیرت زده میپرسد پس در این صورت چرا نکشتیم؟ حضرت علی میگوید بر صورتم آب دهان که انداختی؟ سخت عصبانی شدم. نفسم تحریک شد. قصد انتقام کردم. اگر می‌کشتم مغلوب نفسم شده بودم. این کار خطا به این ترتیب حضرت علی آن کافر را آزاد می‌کند. مرد کافر چنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد که از آن روز به بعد در خدمت حضرت علی می‌ماند. و پس از چندی با خاست و اراده خودش مسلمان می شود. شمس تبریزی دوست دارد هم همچه داستانهایی تعریف کند. اما زیر این ملقمه حرف و سخن چه چیزی تلقین می کند. بگذارید کافرها، منکرها، منافقها سوار کله تان شوند و بر صورت تان توف بیاندازن. اما شما زیر سیبیلی رد کنید مبادا چیزی بگویید نخیر هم چیزی نمی‌شود از مادر نزاید کسی که بتواند به صورت من تف کند چه کافر باشد چه هر کس دیگری Thank you.